به شنوندگان داستان‌های افسانه‌ای صوتی. از سری داستان‌های مجموعه افسانه‌های ایرانی با داستان دیگه ای در خدمتتون هستم. امیدوارم از شنیدن داستانمون لذت ببرید. اسم داستانمون هست پادشاه نادان و پیران عاقل. در زمانهای خیلی خیلی قدیم کشوری بود که پادشاه نادانی برش حکومت میکرد. یه روز از روزا این پادشاه جوون و نادون دستور داد که هر چی پیر مرد و پیر زن تو کشورش وجود دارن از اونجا بیرون ببرن و تو خونه قدیمی دور زندونیشون کنن تا وقتی که بمیرن. چون اون پادشاه معتقد بود که اونا به هیچ دردی نمیخورن و کاری ازشون بر نمیاد پسرا و دخترا و نوه این پیر مرد ها و پیر زن ها هم بدون اون که به عاقبت این کار فکر کنن این دستور رو اجرا می کردن. یه مدتی از این قضیه گذشت یه روز جارتی تو شهر جار زدن که یه خمره طلا در فلان رودخانه دفن شده و هرکی بتونه اون خمره رو برای پادشاه بیاره خوبی مردم به تمه افتادن که این دستور رو اجرا کنن دست دسته به طرف رودخونه به راه افتادن هر کدوم که به رودخونه میرسیدن خودشون رو به آب میزدن تا خمره رو بیرون بیارن آب رودخونه انقدر زلال و شفاف بود که خمره طلا از بیرون آب دیده میشد اما هرکی که داخل آب میشد و به طرف خمره میرفت خمره فوری ناپدید میشد. در و دسته هیچ کسی بهش نمیرسید. مردم زیادی از این طرف و اون طرف اومدن و امتحان کردن اما هیچ کسی نتونست اون خمره رو برداره و از آب بیرون بیاره. شب که همه خوابیده بودن پسری که بین جمعیت بود با خودش فکر کرد که هر وقت مشکلی برای اونو پدر مادرش پیش میومد. سراغ پدر بزرگش می و از اون کمک می بنابراین آهسته و بدون صدا بلند شد و راهی همون خونه قدیمی شد که پدر بزرگا و مادر بزرگا رو اونجا نگهداری می وقتی پسر به اونجا رسید پیش پدر بزرگش رفت و قضیه رو تعریف کرد. پدربزرگش گفت ناراحت نباش منو به اونجا ببر تا چاره کار رو بهت بگم اون جوون پدربزرگش رو کول گرفت و به کنار رودخونه برد پدربزرگ از پشت جوون پایین اومد و نگاهی به آب انداخت و گفت نزدیک برو خمره رو بردار پسر گفت نمیشه چون تا نزدیک خمره میریم و دستمونو رو تو آب می‌کنیم که اونو بگیریم خمره گم میشه پدر گفت من خسته شدم یا کمی زیر این درخت دراز بکشیم و خستگی از تنمون بیرون بره تا علت رو بهت بگم که چیه پدر و نبه روی زمین زیر درخت دراز کشیدن پدر شاخه بالای درخت رو به جوون نشون داد و گفت ببین خمره طلا روی شاخه درخت در آب شماها عکس خمره رو در آب میبینین و وقتی که عکس داخل آب نیفته شماها میرید داخل آب عکس خمر محو میشه حالا برو بالای درختو خمره رو بیار و بعد منو به خونه قدیمی برگردوندی این خمره رو پیش حاکم ببرد. جوون خمره رو به دربار حاکم برد ولی این کار رو با نارضایتی انجام داد چون میدونست از اینکه خمره رو پیدا کرده تعجب میکنن و ازش توضیح میخوان چون اونم نمیخواست که پاسخ درستی بده به هر حال خمره رو به دربار برد و هرچی از اون میپرسیدن که چطوری خمره رو پیدا کردی میگفت دیدم که خمره دراب نیست و روی شاخه درخته پادشاه نادون و تمما گفت که اگر پاداش میخوای باید حقیقت رو بگی بالاخره جوون یه مقدار از پادشاه مهلت خواست و گفت حقیقت اینه که من سراغ همون گوهرایی رفتم که تو خاک پنهون شده بودن و از اونها کمک و راهنمایی خواستم و بعد ماجره رو تعریف کرد پادشاه که نتیجه این نادونی خودش رو فهمید فهمید که خیلی از کارها رو همین پیرمردها و پیرزنا انجام میدن و اونا هستن که میتونن بسیاری از مشکلاتو حل کنن. بنابراین دستور داد که همه سالمندا رو به شهر برگردونن و به اون جوان زیرک و پدربزرگ داناشان پاداش بزرگی دادن. و از قدیمم گفتن هرچه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام آم بیند. امیدوارم از شنیدن این قصه‌مون لذت برده باشین. کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی t.me نقط/مهران دوستی T ME/MEHRAN نشانی وبلاگ ما m دوستی -E